کارمای پول می تواند بهبود یابد. هر مشکل سطحی از راه حل در آگاهی دارد. آگاهی بیشتر به شما ببنایی برای تحول می دهد. از نظر تحول کارمای پولی این گذینه ها به دلیل اینکه ناخودآگاه ناخداگاه توسط آدات دیرینه و شرطی شدن پیشین هدایت می شبند، خود ویرانگر هستند. گذینه همچون نگرانی، استراب، سستی، انکار، افکار واهی، تسلیم شدن، پنهان شدن از خود، بدبینی و قضابت خود، همه ما در معرض این ترفندهای بیهوده هستیم و هرچه این موضوع حساس در باشد، احتمال متوصل شدن به آنها بیشتر می شود. البته پول موضوع بسیار حساسی است و با احساس شکست یا موفقیت شخصی گره خورده است. داشتن پول شما را فرد موفقی در جامعه جلوه می دهد. نداشتن پول باعث می شود شما را نادیده بگیرند و بی اهمیت جلوه دهند. با این حال بسیاری از مردم در خصوص اینکه چگونه به کارمای پولی خود با روشی مثبت نزدیک شوند دانش بسیار کمی دارند در اینجا روش هایی وجود دارد که باعث تغییر در انگاره های کارمایی می شود زیرا آنها با خداگاهی مرتبط هستند استنبات روشن و واضح صداقت با خودتان کمک کارشناسی گرفتن استادگی، باور به اینکه راه حل وجود دارد، اعتماد به اینکه راه حل را پیدا خواهید کرد، تفکر واقع بینانه، متعصب نبودن در خصوص گذینه های پیش رو، قبول مسئولیت، انجام کاری که می باید انجام دهید اگر این دولیست را در نظر بگیرید میبینید که در سایر جنبه های زندگی خود خارج از پول کاملا آگاهانه عمل میکنید. وقتی کاری را انجام میدهید که برای شما شادی آور است یا واکنش هایی از عشق، زیبایی، همدردی، قدردانی و احساس کامیابی را برمی انگیزد به اصطلاح قطع کارمایی وجود ندارد. پول چیزی نیست که به خودی خود این تجربیات را ایجاد کند. پول می میتواند به شما کمک کند چنین تجربیاتی داشته باشید یا راه شما را مسدود کند. استراتژی شما نسبت به کارمای پولی باید حال دریافت این مفهوم باشد. کارمای پول خود را بهبود بخشید یک مادامی که متوجه شدید کاری که انجام می دهید در لیست کارهایی است که کارساز نیستند انجامش را متوقف کنید. این مهمترین مرحله است. 2. با مشغولیتهای ذهنی مثل نگرانی، خودقضابتی، خیالبافی، انکار و غیره مبارزه نکنید. به جای آن مدتی را به آرامی تنها بگذرانید تا زمانی که احساس آرامش و تمرکز کنید. سه هر زمان که به طور کللی درباره امور احساس خوبی دارید و زمان برای باتاب دارید به فهرست گزینه های مثبت نگاه کنید. تغییری را انتخاب کنید که بتوانید واقع بینانه ایجاد کنید و یکی از این سوالات را از خود بپرسید تا در خصوص آن تحمل کنید. چگونه میتوانم از رویداددی آگاه شوم که چالش برانگیز است؟ آیا امری وجود دارد که باید درباره آن صادق باشم؟ کجا می توانم مشاوره خوبی به دست بیاورم؟ یکی از نکات خوبی که واقعاً باید درباره آن پافشاری کنم چیست؟ آیا معتقدم راه حلی وجود دارد؟ آیا اطمینان دارم که میتوانم به راه حل برسم؟ آیا در خصوص جایگاه و وضعیتم واقبین هستم؟ آیا میتوانم برای گزینه های جدید آزاد اندیش باشم؟ چگونه می توانم مسئولیت فردی بیشتری بر آهده بگیرم؟ چهار هنگامی که یک سوال را انتخاب کردید اجازه دهید در شما رنه کند اینها سوالات فرمولی نیستند بلکه خطوط ارتباطی با خیش حقیقی شما هستند فقط با این سوال ساکت بنشینید برای یافتن پاسخ دست و پا نزنید و تلاش نکنید. پنج اکنون منتظر پاسخ باشید. خیلی زود سطح امیغی از آگاهی به شما پاسخ خواهد داد. ممکن است شبیه یک پیام یا یک لحظه شهودی آها یافتن باشد. یا به سادگی مسیر جدیدی گشود شود. شش زمانی که احساس کردید جوابی آمده است برای آن اقدام کنید. هر اقدامی انجام می دهید باید مطابق با آرامش و عرضش های شما باشد. کارمای پوری از طریق نگرانی، بس باس، خود یا انتخاب های ترس محور بهبود نمی چیزی که یاد می به آن تکیه کنید آگاهی جرفتر است. هفت خیش حقیقی شما همیشه در کنار شماست، و یادگیری همسو شدن با آن شما را به سطح راه حل و دوری از سطح مشکل میرساند. هیچ چیز مهمتر نیست. ما در خصوص چگونگی اتصال به خیش حقیقی بحث خواهیم کرد که در این کتاب به آن پرداخته ایم.